تکه دوم لعنت به من لعنت به من که مثل موش روی این صندلی نشستم و خیره شدم به مانیتور لعنت به من که هیچ وقت یاد نگرفتم مثل بچه آدم بگویم چه میخواهم و چه نمیخواهم لعنت به من. لعنت به من که هیچ وقت حرف حرف من نبوده امروز هم مثل هر روز این بار هم مثل هزار بار دیگر نشستم پشت میزم و خود ترسویم را رو لعنت میکنم رومه برای بره سیاه هم از روی مانیتور نگاه می میکند و میگوید شبانه احمق شبانه خنگ میز من تای سالن است و خوشحالم که چسبیده به دیوار گوشهای برای خودم دارم و تمرکزم با راه رفتن هیچ کس دارو بر به هم نمیخورد. خورد. سالن پر از میز و صندلی و کامپیوتر و مهندس است. دارند خطهای کج و معوج روی کاغذهای بزرگ را می و روی صفحه سیاه خطهای رنگی میکشند. بعد بلند می چای میخورند، راه می روند، از هم سوال می کنند و از روی پرینتر هایی با خطهای کج و معوج تر برمی دارند و دوباره از اول مشغول می هم همه ی عجیبی توی سالن است. نمی کلمات را میان صدای هورهور آرامی که به خاطر کولر است یا فن کامپیوترها یا نفس کشیدن این همه مهندس کنارم هم تشخیص بدم. اگر ماشینی از کوچه رد نشود و صدایش از پنجره ها تو نیاید می توانم را ببندم و فکر کنم لب ساحل نشستم و این صدا صدای دریای آرام است. حالا فقط باید کفشهایم را در بیاورم و روی ماسه‌ها قدم بزنم و به جا پایم روی آنکه برای چند ثانیه خیس و سیاه میماند نگاه کنم. از باد خنکی که از ته دریا میآید و به صورتم میخورد، کیف کنم. باد کولر از بالای میز رجا رد میشود و درست به صورت من میخورد. بین میز من و میز او سه میز فاصل است. رجا کنار پنجره سالن مینشیند و مثل پرنده ها عاشق آسمان است هر وقت میآید کرکره ها را باز می کند و برایش مهم نیست روی مانیتورش نور میافتد یا نه خسته که می شودود را میچرخاند و به درخت های خماللو حیاط شرکت زل میزند که تا یکی دو ماه دیگر پر از رنگ می شوند و خودش نیست خودش نیست که میوه یک دست قرمز را ببیند روجا توی سالن بسته آرام نمیگیرد و همش میخواهد بپرد و برود. هنوز نیامده. هر وقت صندلیش را خالی میبینم دلم هم خالی میشود. ارسلان اون سمت سالن کنار در می جایی که من هیچ وقت نمی توانم بنشینم. وسط طرف میزش آدم رد می شود و نمیدانم چطور وسط این شلوغی کلافه نمی شود. تیشرت سورمه پوشیده با جین روشن. از اینجا که نشستم نیمروخش را میبینم که هر از گاهی دست میکشد توی موهایش. صورتش را برمیگرداند و از پشت میزش به من لبخند میزند. من هم یک لبخند بیرمق زورکی میزنم چون حوصله بداخلاقیش را ندارم. خوشحال است چون همیشه هرچه بخواهد میشود. امروز مثل هر روز. این بار مثل هزار بار دیگر. نقشه هایم را تمام کرده بودم. پرنس گرفته بودم و داشتم میبردم مهندس مقدم ببیند. از بین میزها که رد میشدم با نگاهش دنبالم می کرد. وقتی به میزش رسیدم صدایم زد. می شب بریم بیرون یکم حرف بزنیم؟ امشب؟ آره رو که تموم کردیم بریم. شب می رسیم نذاریم برای بعد مثلا آخر هفته. نه می با هم حرف بزنیم. بذار نقشه ها رو ببرم. مهندس منتظره. نگاهش نکردم و راه افتادم. مهندس طبقه اول است و ما طبقه سوم. از پله های سیاه ساختمان رفتم پایین. آرام رفتم تا زمان کش بیاید و دیرتر مجبور شوم جواب ارسلان را بدهم. گلدان های راه پله را برانداز کردم. پله ها تاریک بودند و رنگ سیاه گرانی تاریک تر نشانشان می داد. نوری که از پنجره های تیره وارد میشد از لای برگ های گلدان های رد می شود و لکه لکه روی پله ها می افتاد. یکی از برگ های دیفمبااخی های پاگرد طبقه اول زرد شده بود و تیزیه نوکش خشک شده بود. روی برگ هایش دستکشیدم. التماس میکرد نگذارم بمیرد. پرسیدم چت شده؟ گفتم آفتاب میخواهی کاشی های سیاه را دوست نداری؟ کسی میآید کنارت سیگار روشن می نگاه کردم به خاکش نفس نداشت با که انگوشت خاکش را به هم زدم کیف کرد باید به کرملی بگویم برایش خاک برگ بریزد در چرمکو به اتاق مهندس بسته بود و منشیش با تلفن حرف میزد به من اشاره کرد نقشه ها را به او بدهم و بروم خوب شد حسله سر و کله زدم با مهندس را نداشتم که بنشیند دو ساعت از قراردادها ها و ای که نگرفته حرف بزند و آخرش بگوید فردا بیا جلسه با شرکت سروش. من هم بگویم نمی آیم و دعوای من شود و مرا از شرکت بیرون کند. آن وقت مجبور شوم بنشینم توی خانه و مدام زنگ بزنم به این و آن دنبال کار رو پیدا نکنم و هر روز سر ماهام با مامان بحث کنم. آخرش هم ماهان را بردارم و از آن خانه برای همیشه بروم خانه لیلا یا رجا و هرچه بابا زنگ بزند و منت کند که برگردم محلش نگذارم دو طبقه را آرام آرام بالا رفتم و به همه اینها فکر کردم و آخرش فکر کردم به میگویم امشب نمیایم چون حوصله ندارم نمیایم چون خستم و میگویم دیگر در بحث نکنیم نمیایم و تمام اما کنار میز هرسلام که ایستادم؟ شبونهی دیگر آرام گفت میشه بذاریم برای یه شب دیگه نه شبانه میخوام حرف بزنیم سود برمیگردیم آخه خستم تازه با لباس کارم که نمیشه بیرون رفت فکر کردی کجا قراره بریم عروسی که نمیخایم بریم که با لباس کار نشه بریم جمشیدیه قدم میزنیم حرف میزنیم برمیگردیم همیشه زورم رو جمع کردم تا بگویم میخوای بگم بچه‌ها هم بیان از جا پرید. پس مشکلت نه خستگیه نه لباس کار؟ مشکل منم. با من نمیخوای بیای؟ صورتش سرخ شده بود. به دور برم نگاه کردم و خیالم راحت شد که کسی حواسش به ما ترسیدم باز صدایش برود. بالا. آروم رو این چه حرفیه که میزنی؟ گفتم شاید. گفت شاید چی؟ صد بار میگم میخوام حرف بزنیم. اصلا اگه دوست نداری نمیریم. فکرتو بکن خبرشو بهم بده. خودکارش را كوبید روی میز و سرش را کرد توی مانیتور ترسیدم باز جلوی همه دعوا راه بیاندازد باز قهر کند و هر وقت نگاهش میکنم اخم کند ترسیدم به سرش بزند و همه چیز را به هم بریزد آن وقت مثل همه سالهای قبل تنها بمانم و هیچ کس را پیدا نکنم که دلش بخواهد مرا ببرد جمع جمشیدیه آن وقت مدام به این و آن نگاه کنم که با کسانی که دوستشان دارن بیرون میروند و من از قصه تنهایی بمیرم گفتم، باشه، بریم، همونطور که با کاغذ ها میرفت زیر لب گفت، بیرون رفتن و با آدم زهر مار می کنی، نگاه هم نکرد، منتظر ماندم تا بفهمم بالاخره می یا نه، هرچی استادم سرش رو بلند نکرد، رفتم سمت میزم. بالاخره یک چیزی می شد دیگر، از لای میزها رد شدم و زیرچشمی به آدم ها نگاه کردم، هیچکس صدای کوبیدن خودکار را رو روی میز نشنیده بود نشستم و صورتم را توی دستهایم گرفتم انگشتهایم یخ کرده بود کاش میفهمیدم باید با او بیرون بروم یا نه به صدای هور هور گوش دادم و هر کاری کردم تا فکر کنم، با دامن چیندار رنگی زیر آفتاب روی شنهای ساحل مدیترانه نشستم و منتظر مرد قد بلندی هستم که با پاپیون و فراک بیاید و مرا برای نهار به هتل دعوت کند، نشد. به خودم فکر کردم که چرا اینقدر از تنهایی میترسم؟ چرا نمی توانم مثل آدم حرف بزنم؟ چرا نمی توانم روی تصمیم هایم بیستم؟ کی را باید مقصر بدانم؟ پدرم را؟ مادرم را؟ یا مریضی ماهان را که بعد از آن هیچ چیز زندگی ما شبیه زندگی واقعی نشد؟ از که اینقدر ضعیف شدم؟ شاید از آن شب زمستان که عژیر خطر زدند و مامان ماهان را به سیناش فشار داد و داد زد من چیکار کنم با این بچه ای مریض ماهان تب کرده بود. چشمهایش را باز نمی‌کرد، گریه هم نمی‌کرد، فقط تون تون نفس می‌کشید. مامان تو شکچش را پهن کرده بود روی قالی قرمزمان. برق رفته بود و من مشقهایم را ننوشته بودم. بابا توی اتاق راه می‌رفت و از کنار شَم کرد میشد سایه ترسناکش روی دیوار بزرگ می‌شد. مامان شلوار ماهان را در آورد و پاهایش را توی تشت کوچولوی نارنجی شست. بابا یک کیسه‌ی پر از یخ آورد. مامان به من گفت یخ‌ها را بگذارم روی پیشانی ماهان. گذاشتم. بدنش تکان خورد کیسه را نگه داشتم و به سینهش که تند تند و نامنظم با و پایین رفت نگاه کردم یخها کوچک می شدند و توی کیسه پر از آب شنا می کردند بابا کیسه دواها را روی میز ریخت بازا جیر زدند بابا رفتم پنجره پنجره زرد و نارنجی شد و صدای ترسناکی آمد شیشه ها لرزید من کیسه را ول کردم و بلند شدم و چسبیدم به دیوار بابا داد زد زود باشین لباس بپوشین. انگوشتایم یخ کرده بود و حق حق می کردم سر می خورد توی دهانم و مزه دریا میداد. داد را ننوشته بودم و ماهان داشت می مرد بازا جیر مامان لباس ماهان را در و آب تشت را رویش ریخت توشتک چش خیس شد ماهان لرزید بابا برش داشت و داد بغل مامان مامان گفت بزار برشون لباس بردارم و گریه کرد بابا مرا بغل گرفت گفت نمیخواد، یک پتو انداخت روی ماهان و دست مامان را کشید به الان خونه آوار میشه سرمون من به خانه نگاه نکردم و ترسیدم روی سرمان آوار شود به غالی قرمزمان زمان نگاه کردم که هاشیهش خیابانی بود که ماشینهایم را آنجا پارک میکردم و رنجش پارکی که در آن تاب میخوردم به توشکچه ماهان و تختش که گوشه اتاق بود به کیسه دواهایش روی میز، به مخده ها. پتوی مچاله شده با بالش های صورتی چیندار که از مکه آورده بودند و رویشان تاووس پولکی سبز و قرمز دخته بودند. به تلویزیون ما نگاه کردم که در چوبی داشت و وقتی کارتون تمام میشد، درش را میبستم و پارچه چهل مادربزرگ ما در را رویش میکشیدم. به دفتر مشق و کتاب فارسی هم روی میز. به تابلو کوبلن مامان که پرنده سفید توی آسمانش را من دخته بودم. به شمعی که روی میز روشن بود و به سایه های ترسناکی که با تکانهای ما روی دیوار میافتاد. خانه میخواست آوار شود روی سرمان و لابد بعد از آن کوبللا میافتاد روی شام و خانه با همه مشخواهی که ننوشته بودم آتش میگرفت و پرنده سفید کوبلن پرواز میکرد و از لای آجرها رد می و میرفت پیش معلم و به او می گفت که شب شده و من هنوز مشقام را ننوشتم. بابا شم را فوت کرد چشمیم رو بستم و محکم فشار دادم تلفن روی میزم زنگ میخورد منشی مهندس است میای پایین حسله یه نخشا تازره برسلا نگاه میکنم که سرش به کار خودش است کاش میشد از کنارش رد نشوم اما راهی نیست میزش چسبیده به در سالن و مهندس منتظر است موبایلم رو بر و جوری که مثلا سرم به آن گرمست راه میفتم اونشی مهندس نقشه ها را به من میدهد و با ماتیک قرمزش توی صورتم می خندد. در راه نقشه ها را برانداز می کنم. کی وقت کرده این همه اصلاحیه بدهد. سرم را می کنم توی نقشه ها و از کنار میز ارسلان رد می شدم. صدایم می کند. مهربان شده و این یعنی شب می رویم جمشیدیه. می خواهم زنم غذا بیارن. تو چی می هیچی گرسنه نیستم. دل نه سابونه زیاد خوردم چاهم شدم چیز نخورم بهتره مهندس چی گفت؟ اصلاحیه داده کمک میخوای؟ نه زیاد نیست ممنون سری میروم و مینشینم سر جایم رومعو و یکی از مهندس ها دارن نگاهم میکنند سرم را پایین میاندازم وقتی با ارسلان حرف میزنم حس می کنم همه نگاه هم میکنند و لابو توی دلشان به من می ترسوی بیوره بعد آنهایی که ماجرای ماهان را میدانند به آن که نمیدانند میگویند و نیم ساعت بعد همه با هم دور میزم جمع میشوند و درباره من و ماهان و ارسلان حرف میزنند آن که احساس خفگی میکنم و گریه هم می گیرد و وسایلم رو جمع میکنم و برای همیشه از شرکت می روم نخشه ها را باز میکنم گرس و حوصله کار ندارم کاشم امروز تر تمام می و می رفتم خانه. ماهان خانه است. حتما مامان غذا پخته. موبایلم زنگ می زند. به میز خالیش نگاه می کنم و به ساعتم. باید تا حالا می میگوید کارش دیر تمام شده و الان دارد با لیلا ناهار می خورد. می که تمام شد می آید. چقدر دلم می خواست که بودم. دلم رستوران می خواهد و دوستای خودم را دوستایی که موازه چی خوردین؟ پیتزا و لازانیا دارم برات لازانیا میارم حیولایه توی دلم سر و صدا میکند دورو برام را نگاه میکنم و دعا میکنم کسی صدایش را نشنیده باشد گلی دارد میخندد. حتما شنیده دلم برای لیلا تنگ شده برای نشستن گنارش را حرف زدم با او لیلا بیشتر از هر کسی مرا میفهمد درست مثل میسار به رجوع میگویم گوشی را بدهد به او. میخواهم بگویم شب مجبور شدم با ارسلان بروم بیرون و به نظرش حالا باید چه کار کنم؟ اما پشیمان میشوم حتما راحت نیست سر نهار حرف بزند. شاید هم حوصله نداشته باشد به حرفای تکراری من که هر روز درباره ارسلان است گوش بدهد. حالش را میپرسم و میگویم بعد همه چیز را برایش تعریف میکنم. باز دلم صف میرود. لیلا می گوید. چیزی نمیخواد؟ دلم ساندویچ میخواد میگم روجا بگیره ساندویچ چی؟ برسالان نگاه میکنم که دارد با دلخوری کار میکنند بدون او ناهار بخورم باز دردسر سر میشود میگوید نخواستم با او غذا بخورم و چرا نخواستم و گوش نمیدهد تا تو توضیح بدهم دادهایش را که زد میگذارد و میرود میگویم هیچی کن؟ بعد با هم میرم و میخوریم باید با لیلا حرف بزنم میگویم شب به زعی میزنم حرف بزنیم. منتظرت هستم. ارسلان گفت: منتظرتم و پایین رفت. میساق تازه رفته بود. هوا تاریک بود و اولین برف سال شروع شده بود. از پنجره دانه های ریزش را دور و بر چراغ برق خیابان میدیدم که از هم جلو میزدند و پایین میرفتند. زمین خیست خیس بود. کسی توی شرکت نمانده بود و کرم علی داشت لیوانها را از روی میز جمع می کرد. شال گردن سفیدی را که خودم بافته بودم پیچیدم دور گردنم و تا زیر بینیم آوردمش بالا دوست نداشتم پایین بروم و آرزو میکردم پر سی داشتم تا آتشش میزدم و سی مثل نیلوی کارتون نیلز میامد و برم میداشت و میگذاشتم توی صبح فردا سر فرصت پالتوم را پوشیدم و دکمه هایش را یکی از یکی آرام بستم بزدم را روی شانه انداختم دستهایم را توی فرو کردم. ذولانی هر این جوری که بلد بودم از کرم علی خداحافظی کردم و از شرکت بیرون آمدم. اولاً با همون پراید سبز کثیفش جلوی در منتظرم ایستاده بود. شیشه ماشینش رو پایین کشید و بدون اینکه بخندد جوری که شبیه وقتهای دیگر نبود گفت: سوار شو. اولین بار بود که سوار ماشینش می‌شدم. های پالتوم خیس شده بود. برف تند بود و روی شیشه ماشین می‌نشست. باید چیزی میگفتم تا چیزی را که دوست نداشتم نگوید. گفتم برفش ریزه، حتماً میشینه، بردرم آشق برفبازیه، حتماً الان پشت پنجره نشسته و داره به خیابون نگاه میکنه. چیزی نگفت و سکوتش قاطی شد با صدای برف کن که قچقچ میکرد و برفها را تلمبار میکرد پایین شیشه. ترافیک بود و نور قرمز ماشین جلویی روی صورت ارسلان افتاده بود، با انگشتم روی بخار پنجره ماشین دایرهی کشیدم و برایش چشم و دماغ و دهان گذاشتم. از سکوت خورد شده بود و داشتم بد اخلاق می شدم. حتما فهمید که گفت کجا بریم؟ نمیدونم. من باید زود برم خونه درسای برادرم مونده. پس من سری حرفامو می میزنم. توی صورتش دنبال ارسلان شوخ و خندانی گشتم که شش ماه بود توی شرکت می‌دیدم. همون پسری که روز اول کارش برای همه بستنی خریده بود و با صدای بلند با همه کسانی که نمیشه ناخت پرسی کرده بود و تا عصر چندتا دوست برای خودش داشت. پسری که شرکت برایش مثل کلاس های دانشگاه بود. از امیر کبیر با معدل خوب فارغ و تحصیل شده بود و کلی سابقه کار داشت و از همان اول قراردادش را با قیمت بالا بسته بود. پسری که هر روز به یک رستوران جدید می میکرد تا برایش غذا بیاورند و از حرف پرستی برای خوشگذرانی استفاده میکرد و سر به سر همه میگذاشت حتی رجا. آن شب آن پسر همیشگی را توی صورتش پیدا نمیکردم. خشک بود و جدی. راه افتاد سمت خانه ما و شروع کرد به حرف زدن. گفت پدر ندارد و با مادرش زندگی میکند و عاشق اوست. گفت مادرش معلم بوده و بازنشسته شده و حالا خونه کوچکی دارن در خیابان ملک. نگفت پدرش چرا مرده و من همون لحظه ده تا داستان برای مردنش ساختم، یکی از یکی زیباتر و غمانگیز گفت: از سادهیه من خوشش آمده و از اینکه سرم به کار خودم است. گفت دیده که اون بار توی شرکت وقتی مهندس مقدم بیخودی غ زد و داد زد من به جای دووا با لبخند نگاهش کردم و به حرفایش گوش دادم. گفت دیده هیچ وقت بلند نمیخندم، داد نمیزنم و بد اخلاقی نمی کنم. گفت لبخندی که همیشه دارم آرامش میکند. گفت از رابطه فقط آرامش میخواهد همین. و مردن پدرش یادش داده که زندگی چقدر قدر کوتاه است و ارزش ندارد چند سالی را که از عمرش مانده در استراب زندگی کند. آخرش هم گفت اگر با هم باشیم نمیگذرد اذیت شود و برایم چیزی کم نمیگذارد. برای آدمکی که روی بخارهای شیشه کشیده بودم، موهای فرفری گذاشتم. دو پا پیون دو طرف سرش کشیدم و شروع کردم به کشیدن چینهای دامنش. آدمک با آستین پوفی و دامن چیندار دایه من شد که به جای مادر هم از بچگی بزرگم کرده بود و حالا آمده بود به جای من جواب ارسلان را بدهد. برای اشرافزادهی مثل من زشت بود که خودم چیزی بگویم، حتا런 چیزی نپرسید. نه از اخلاقم، نه از پدر و مادرم، نه از خانه‌ام و نه از هیچ چیز دیگر. خوب شد که نپرسید. دوست ندارم برای کسی از ماهان حرف بزنم. با پشت انگشت‌هایم دایره پاک کردم. دستم یخ زد. رسیده بودیم خانه. هر باز هم نخندید. خشک و جدی گفت به حرفایش فکر کنم چون باید بداند از این به بعد رفتارش با من باید چطور باشد. دلخور بودم. چون نمی‌خواستم اینها را بشنوم با همان سلام و احوالپرسی و شوخی‌های معنادارش راحت‌تر بودم نه حقی داشتم نه وظیفه‌ای نمی‌خواستم فکر کنم دوستش دارم یا نه اما حالا مجبورم کرده بود پیاده که شدم دستش را به در گرفت و نگذاشت را ببندم دوباره گفت منتظر جوابم می‌ماند و در را بست و رفت روجا از در سالن می‌آید تو و بلند سلام می‌کند مثل همیشه دستهایش پر است موهای کوتاهش را قرمز کرده و ریخته روی پیشنی. پوشه قرمزی را می‌گذارد روی میز کیفش را پرت می‌کند روی پوشه و اینکش را می‌گذارد کنارش هنوز یک کیسه بزرگ دستش است با های شلو خسته می‌آید سمت من دستی به سر روم او می‌کشد و کیسه را می‌گذارد روی میز ناهار که نخوردی نگاه می‌کنم به حواسش به ماست روجا رد نگاه هم را می گیرد و برمیگردد و برای ارسلان دستکان می دهد. ارسلان نیمخیز می روجا به من نگاه می کند. چیزی شده؟ اصاب نداره انگار. نه خوبه. لیله رفت روزنامه؟ رفت اما حالش خوب نبود. امروز دوباره از میساق حرف میزد. باز بخور لازنی هست. میساق؟ آره یادش افتاده بود. همیشه یادشه؟ میساق میساق مهربان چقدر دلم برایش تنگ شده اگر بود میتوانستم هر قدر که دلم میخواهد با او حرف بزنم میتوانستم بپرسم امروز با ارسلان بروم بیرون یا نه بپرسم اصلا باید با او چه کنم شاید هم میگفتم خودش برود و با ارسلان حرف بزند بعد هر کاری که میگفت میکردم و دیگر نگران هیچ چیز نبودم روجا پلاستیک را کنار میزند و در ظرف را باز می کند. بوی سس و پنیر میپیچد دور میز روجا یک چنگال پلاستیکی از توی کیسه در میآورد و فرو میکند توی لازانیا بخور دیگه تا سرد نشده چرا امروز هیشکی مثل آدم غذا نمیخوره مینشیند پشت میزش کامپیوتر را روشن میکند سندلیش را میچرخاند و به پنجره می میزند یک تکه لازیا میخورم و نگاهم هم میرود سمت ارسلان که سرش به گرم است. کاش ماهان اینجا بود. خیلی وقت از تو را رستوران نبردم. در ظرف را میبندم و نقشه ها را باز می کنم. مهندس مقدم طول شفت را کمتر کرده و زری به اطمینان را آورده پایین. حتما هزینهش بالا بوده. حوصله درست کردنش را ندارم. حالا فقط دوست دارم بروم خانه روی تختم دراز بکشم و داستانهای بی خود بخانم صد بار به خودم گفتم کتابی از خانه بیاورم و بگذارم توی کشوه میزم برای اینجور وقت تا همیشه هم یادم رفته نقشهها ها را جمع میکنم روما را بغل میکنم پوشه ادبیات را روی دسکتاپم باز میکنم و دنبال یک ایبوک خوب میگردم داستانهای چاپ نشده بکفسکی را باز میکنم پاراگرف اول را باز می خانم، باز نمیفهمم. فهمم هر بار وسط جمله دوم مغزم رها می شود و میرود جاهای عجیب کاش یه کتاب کلاسیک سنگین داشتم مثل سرخ و سیاه از اینها که گرفتنشان دست را خسته میکند و زمین گذاشتنشان مغز را میخوااندم و لابلای جمله ها مادام دورنال می شدم. با دامن بلند آستردار سردار، جلو شومینه. برو دوزی می کردم و وقتی به این فکر می کردم که دیگر نباید جولین را ببینم اشت میریختم. یادم باشد معنای برو دوزی را پیدا کنم. بیست سال است که میخوانم و نمیدانم چیست. ساعت را نگاه میکنم. تازه سوانیم است و من باید هزار ساعت دیگر اینجا بمانم تا شب با ارسلام بروم بیرون و کنارش راه بروم و ادای آدم های و خوشبخت را در بیاورم. باید ادای آدم های خوشبخت را در بیاورم. تنها کاری که مطمئنم خوب بلدم. همه من همیشه ادایش را در ایم. من، مامان، بابا بین ما فقط ماهان است که انگار همیشه خوشحال است. کسی چه میداند حرف درست که نمیزند شاید او هم مثل ما دارد ادا درمیآورد مثلا آنبار که زندگی مزخرف مامان به جای رسید که بابا ما را ببرد مسافرت خانوادگی تا احساس خوشبختی کنیم و ماهان تمام راه را بالا آورد و ماشین را به گند کشید یا آنبار که رفتیم مدرسه ی ماهان و به سرودی که با دوستانش خواند و هیچ کس چیزی از آن نفهمید گوش دادیم و با لبخندهای احمقانه برایش دست زدیم حتی روزی که دانشگاه قبول شدم و مامان جشن گرفت و ماهان را گذاشت خانه مامان بزرگ تا آبروی من را جلوی مردم نبرد خیلی وقت هست داریم ادا در میآوریم ادای خوشبختی ساده ای که در این بدبختی مأثوم ابدی گمش کرده ایم از کی شروع شد کجا کدام روز یادم از چند ماه طول کشید تا فهمیدیم باید برای همیشه فراموشش کنیم چیزی به زندگی ما اضافه شده بود چیزی مثل یک قول سیاه بزرگ که همیشه کنار ماهان راه می رفت و سایه زشتش روی اون میافتاد. میدیدمش که با دندانهای زشت و کثیف بین مامان و ماهان می ایستاد و میخندید. مامان برای بار هزارم ماهان رو رو به جلو ایستند به من گفت دو قدم عقب بروم ترسیده بودم اما همونطور که مامان گفته بود جیکم در نمی آمد. مامان زیر بازوهای ماهان را گرفت و نگهش داشت. وایسا مامان؟ حالا برو بقل خواهرت بلش کرد و هلش داد طرف من. زانوهای ماهان خم شد و افتاد. مامان عرق کرده بود و موهای سیاهش رشته رشت به گردن و پیشانیش چسبیده بود. دوباره بلندش کرد. نفس نفس میزد. زد. پسرم پسرم، رو نگاه کن. فقط دو قدمه. برو، دوباره ماهان را ایستان و ول کرد. ماهان با صورت خورد زمین. من گریه کردم. التماس کردم. ولش کن مامان گناه داره. مگه نگفتم حرف نزن. از جا تکون نخور وقتی اومد طرفت بگیرش. ایستادم. ماهان می افتاد و گریه نمی کرد. فقط هر بار سرش را از روی زمین بلند می کرد و با التماس نگاه هم می کرد. من حقق می کردم و فکر می کردم تا بابا برسد ماهان می میرد و باید مثل بابا بزرگ بپیچیمش توی پارچه سفید و بگذاریم لای سنگ توی خاک و هی گریه کنیم فکر می کردم مامان از بابازی و ماشین هایش را مثل اصلاب و لباس های بابا بزرگ می گذارد دم در تا نمکی ببرد و من بدون او چقدر تنها می برای ماهان گریه می کردم و مامان دست بر نمی داشت. بلندش می کرد و ماهان دیگر حتی پاهایش را رو هم روی زمین نمی گذاشت. از لای دست مامان ول می شد و می ریخت. از گلوی ماهان صدای پرنده خفه ای آمد و باز افتاد. مامان جیخ کشید و ماهان را زد. پاشو وایسا! وایسا! دفیدم جلو و ماهان را بغل کردم. مامان تو رو خدا ولش کندره می میره! مامان تکه داد به دیوار و سرش را کوبید به آن، تق، تق، تق، صدای کوبیده شدن سرش توی سر من پیچید، داد زد، کاش مرده بود، کاش ماهان سنگین را برداشتم و دویدم ته حال چسبیده به دیوار نشستم و نشاندمش روی پایم طوری به خانه نگاه میکرد انگار بار اول از اینجا را میبیند خندهش گوشه ای لبش مانده بود دستایم را دورش حلقه کرده بودم و گریه میکردم دوستش داشتم نمیخواستم بمیرد آنقدر گریه کردم و ماهان خندید تا صدای کلید آمد بابا در را بازگرد و آمد تو یک جبه شیرینی دستش بود و دو جعبه بزرگ کادو پیچ. ماهان دستایش را برای بابا باز کرد. آرام سلام کردم و سلامم لایه حقه غیری هم بریده شد. بابا نگاهمان کرد و گفت. باز چی شده؟ مامان داد زد. از صبح تا شب توی اون اداره خراب شده چپیدی و نمیبینی این بچه هنوز راه نمیره. بابا جعبه شیرینی و کادوها رو گذاشت روی میز. ماهان چهار دست و پا رفت به طرفشان دستش را به سمت من دراز کرد. بلند شدم. بابا گفت راه نمیره که نمیره. نمیفهمی مریضه؟ مریض نیست. کودنه. چرا؟ مریضه. دست از سرش بردار. بلند شو یه آرام بخش بخور. کیک خریدم. مامان براخ شد. کی گفت کیک بخری؟ خودم گفتم. برای تولد شبانه سی نفر مهمون دعوت میکنی. اما برای این بچه حتی نمیگی مادرت بیاد اینجا. بگم بیان که ببینم بچم دو سالش تموم شده اما فقط بلد نگاه کنه ماهان پایه میز را گرفت و خواست بلند شود ترسیدم بیفتد. کادوها را برداشتم و گذاشتم زمین ماهان نشست روی کادوها کوبید و خندید بابا رو کرد به من بلند شو بابا کبریت بیار شما رو روشن کنیم روجا میگوید بلند شو شبانه بریم چای بخوریم رومه اورا میگذارم سر جایش و دنبال روجا تا آشپزخانه میروم آشپزخانه تاریک است رجا غوری را برمیدارد ماکها را میگذارم جلوش تا چای بریزد چای قوری جوشیده و سیاه شده میگوید تیبک داری نه می رود توی سالن و با دو بسته بر می برمیگردد از گلی گرفتم در ماکها آب جوش می ریزم و می نشینم پشت میز برای بار هزارم به گلهای ریز زرد رومیزی پلاستیکی خیره میشوم روجا پاکت‌های نسکافه را خالی می‌کند توی آب جوش و با پشت قاشق هم می‌زند. می‌گوید: امروز دو میلیون تومان دیگه برای ارسلان می ریزم. می‌مونه پنج میلیون که نمیدونم کی میتونم پس بدم. نگران نباش، لازمش نداره. روجا لیوان را می‌گیرد جلوی دهانش و فوت می‌کند. روی شیشه های آینه‌کش بخار می‌نشیند. اگه لازم داشت به من میگی، شاید با من تارف کنه. تا میخواهم از روجا بپرسم که اصر را کار کنم، گلی می‌آید تو. چای میریزد و میپرد وسط حرف من چطوری شوانه؟ شقدر از صبح دستبست هست مثل خانمای قاجار میشینی صدر مجلسه فکر میکنی؟ هرچی ارسلان شلوغ میکنه تو آروم یه جا میشینی. اینطوری معلوم باشی کلا سرت میره. به چی فکر میکنی آخه؟ تا دوست جونتم نیاد که نهار نمیخوری. البته منظورم رجاس این یکی دوست <تصفح> لبخند میزنم. هزارمین باری است که امروز به زور می خندم. اون یکی دوست کو؟ تنهایی چای میخوری بش برنمیخوره هرس میخورم و بد اخلاق میشوم متنفرم از آدمهایی که بدون خجالت توی صورتم نگاه میکنند و در مورد زندگیم حرف میزنند اصلا همینها بودند که مرا به ارسلان چسباندند روجا میگوید حق دارند و تقصیر خودم است که از صبح تا اصر جلو مردم با ارسلان این و آنور میروم گیرم که میروم اما درباره زندگیشان با آنها شوخی نمیکنم چقدر خوب است که روجا هست و مجبور نیستم با گلی تنها بمانم روجا همیشه بلد است جواب همه را بدهد و از هیچ چیز خجالت نکشد. رو میکند به من. چون خودش کسی را نداره حسودیش میشه. گلی قهقهه میزند و مینشیند. حرف میزند و حرف میزند. به رو میزی نگاه میکنم و چشمایم را تار میکنم. گلها را به هم می چسبانم و با آنها مربع و دایره و قلب میسازم. هر کاری میکنم ها مثلث نمیشوند. کوچولو میشوم و لای مربح های کوچک و دایره های بزرگ پر از گل لیلی میکنم و زردی بابونه ها به دامن صورتی و پیشبند سفیدم میچسبد. عصر که برگردم خانه، حتما کارگر سیاه پوستمان که شبیه مامی اسکارلت هست دعوایم می کنم. اما وقتی میگویم دیدم که برای بچه شیرینی برداشته و تهدید میکنم که چغلیش را به مامان میکنم، مهربان می شود و قرار میگذاریم گذاریم هیچ کدام چیزی به کسی نگویی. به صدای گلی گوش می کنم که شبیه دوبله کارتون هاست و حتما معلم سرخانم که مثل جین ایر مهربان و همین طوری حرف میزند اگر گلی اینقدر مزخرف نگوید میتوانم توانم ساعت ها به صدایش گوش کنم که سین ها را جور خوبی میگوید که دوست دارم. با زبانم سین را تقلید می کنم. از سالون صدایم می کنند. شوانه تلفن. لیوان نیم خورده نسکافه ام را برمیدارم و بلند می شوم. مرسی گلی به روجا میگویم بعدم میام که حرف بزنیم گلی میگوید ببخشید که اومدم وسط حرفتون با کار خصوصی داشتین میگذارم رجا جوابش را بدهد و بیرون میآیم. منشی مهندس پشت خط است. از فردا ساعت پنج شرکت سروش جلسه داری فردا فردا دوشنبه است و ماهان ساعت شش کلاس نقاشی دارد م... من فردا نمیتونم مهندس کفت بهت بگم باید باشی. انگا قرار خرید گذاشتم. می از فس کنم به خودش حرف بزنی؟ حرف زدم با مهندس فایدهی ندارد. باید بروم. نه جورش میکنم. باشه عشقم. تلفن را قطع میکنم و فکر میکنم که چه کسی میتواند فردا ماهان را ببرد کلاس. بابا سر کار است. مامان هم او را نمیبرد مثل همیشه فکر میکند بی است. داری بیخودی خودی عذابش میدی تو واقعا فکر می‌کنی این بچه نقاش میشه ماهان بچه نیست دو برابر من قد داره نقاشی هم دوست داره عقلشو میگم که اندازه بچه چهار سال است های کلاس مسخرهش میکنن چرا چیزایی به این سادهییو نمیفهمی بس کو مامان هیچکی مسخرهش نمیکنه میبرمش و میبینی چقدر خوب یاد میگیره خواستم بگویم این کینت به ماهان کی تمام می شود کی میفهمی بعدبختی هایت همش تقصیر اون نیست کی یاد میگیری دوستش داشته باشی؟ اما نگفتم حرفم را قرد دادم و در را با فشار همه حرفهای نگفته در گلویم کوبیدم به هم ماهان زودتر رفته بود و توی ماشین آژانس نشسته بود شلوار جین نوش را پایش کرده بود. کت مخمل قهوهی بهش پوشانده بودم و موهایش را کجشانه کرده بودم. از دور نگاهش کردم که روی صندلی عقب ماشین نشسته و سرش را تکیه داده به شیشه. دلم برایش رفت که اینقدر آقا شده. نشانی کلاس نقاشی را از لیلا گرفته بودم. از تصویرساز ساز مجلشان تعریفش را شنیده بودم. کلاس برای بچه های نبود، برای بچه های زیر ده سال بود و نمیدانستم ماهان بیست و دو ساله را قبول می یا نه. ماهان توی راه هیچی نخواست بس که ذوق کلاس را داشت. چهار پنج بار از من پرسید کلاسش خوب است؟ و من گفتم آره خیلی خوبه لیلا گفته. اسم لیلا را که میشنید شنید آرام میشد و چند دقیقه بعد باز می کلاسش خوب است؟ راننده مثل همه راننده های دیگر مدام از توی آینه نگاهمان میکرد. دیگر یاد گرفته بودم از دیدن نگاه هایی که روی ماهان ثابت می ماند نشوم وقتی رسیدیم با امپی پلیر برای ماهان شازده کوچولو گذاشتم و گفتم توی ماشین بنشیند و پسر خوبی باشد تا من برگردم. بچه ها هنوز نیامده بودند و مرابی داشت قوتی های رنگ را روی میزها ها می صدایش کردم و گفتم که از طرف فلان آقا که تصویرساز فلان مجله است اومدهم و چقدر تعریف کارش با بچه‌ها شنیدم بعد گفتم برادر من منتال ریتارد است اما احساس میکنم استعداد نقاشی زیادی دارد با تعجب نگاهم کرد باز وقت وقتی شروع شده بود چرا باید آدمها معنای این دو کلمه ساده انگلیسی را ندانند تا من مجبور شوم بگویم منظورم عقب مانده ذهنی است چقدر از این کلمه متنفرم و چقدر از گفتنش فرار می کنم و هیچکس این را نمیفهمد گفتین اینکه برای بچه های عادیست و شاید پدر و مادر بچه های دیگر اعتراض کنند گفت برادر شما باید در مرکزی آموزش ببیند که مخصوص به اوست انگار خودم این را نمیفهمیدم این من نبودم که بیست و دو سال با او زندگی کرده بودم و بهتر از هر کسی میفهمیدم چه مرکزی مناسب اوست و چه مرکزی نیست؟ خودم را آماده کرده بودم که اصرار کنم خواهش کنم و بگویم برادر من آرام و مهربان است و تا حالا به هیچ کسی آسیب نرسانده. بعد نقاشی هایش را نشان بدهم و استعدادش را بکوبم توی صورت هر کسی که میگوید ماهان عادی نیست. اما نتوانستم. مثل یک دختر خوب و حرف گوش کن نقاشی ها را از پوشه‌ای که دستم بود بیرون آوردم و نشانش دادم. چند ماه میشه که دوستم برای تولدش رنگ انگشتی خریده از اون روز از پای این کاغذا بلند نمیشه تا حالا چند قوطی رنگ تموم کرده. حالا که قبولش نمیکنین میشه نگاهی به اینا بندازیم ببینین استعداد نقاشی داره یا نه نقاشی ها رو چند بار با دقت نگاه کرد. برادر تو آوردی از پنجره ماهان را نشانش دادم که هدفون توی گوشش بود و سرش را به شیشه ماشین تکیه داده بود و آرام نشسته بود. راستش من تا به حال با های استثنایی کار نکردم اما اگه خودت بتونی همراش بیای بعدم نمیاد امتحان کنم میتونی منتظر بمونی کلاسم تموم شه منتظر ماندیم رفتیم و بستنی خوردیم رفتیم شهر کتاب رنگ و پاستل و ماژیک و تایی خریدیم مربی نقاشی قبولش کرد ماهان عاشق کلاس نقاشی است تمام هفته را منتظر دوشنبه است باید کسی را پیدا کنم تا او را به کلاس ببرد. لیلا خوب است، ماهان لیلا را از مامان هم بیشتر دوست دارد، روی کاغذیات داشته روی میزم می نوویسم، تماس با لیلا برای کلاس ماهان. بچه یه دقیقه گوش کنین؟ آقای کازمیست. است، مسئول مالی شرکت، هم همه سالن برای چند لحظه آرام می شود و گوش هایم نفس راحتی میکشند. میگوید؟ فردا مدارکتونو بیارین برای بیمه، سه قطعه عکس، کپی پشت و کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه. کسایی که قبلا بیمه بودن شماره بیمه قبلیشون بیارن. فرم‌ها رو موقع رفتن از جلوی در بردارین. توی دل روجا انگار قند آب میکنند که اینطوری میپرد جلوی میز من. به نظرت من مدارکمو نیارم دیگه؟ تو چند هفته دیگه میرم؟ میروم را با چنان لذتی میگوید که دلم نمیآید بگویم حالا مدارکت را بده شاید یک چیزی شدن نرفتی دلتنگیم را ته دلم قایم می کنم و میگویم آره نیار به دردسرش نمیارزه به مدارک خودم فکر می کنم. شناسنامه و کارت ملی و کپی هایشان توی کیف مشکی زیر تخت آمدهاند بابا به فهمت قرار است بیمه شوم از خوشحالی بال در می آورد. تنها مشکلش با کار من بیمه نداشتن آن است وگر دخترش درست همانطوری که او خواسته بود دانشگاه رفته و مهندس شده و جبران پسر مریضش را کرده. حالا فقط بیمه نیست. مدام برایم دنبال کار دولتی بیمه دار می گردد و از این حرف میزند که بیمه برای آینده و زمان بازنشستگی هم چقدر مفید است؟ آخرش هم میگوید به آیندهت فکر و از این شرکت بیا بیرون. ده سال دیگر بیست سال دیگر سی سال دیگر تا حالا که شش سال گذشته و من بدون اینکه بیمه باشم بیست ۸ ساله شدم. بابا نمیداند من نمیتوانم چیزی را عوض کنم. کارم را توی این شرکت حتی اگر حقوق هم نداشته باشد جرأت نمیکنم عوض کنم. بابا نمیداند من حتی کیف پول پارهم را هم سه سال است با خودم این براآور می میکشم، و خجالت میکشم جلوی کسی آن را بیرون بیاورم. هر بار که خواستم آن را با کیف پول نویی که ارسلام برایم خریده عوض کنم، قلبم تاب تاب کرده و تمام تصویرهای گذشتم با این کیف جلوی چشمم آمده و نتوانستم. بابا این چیزها را نمی داند. فقط می داند می سر کار و فکر می کند خوشحالم. بابا فکر می کند دخترش مهندسی قوی و موفق است که توپ تکانش نمی دهد. مهندسی که هیچ وقت نباید نگران آیندهش بود. بابا خیلی چیزها را نمی داند. کیف پولم را باز میکنم و پاکت کوچک ها را میکشم بیرون یک عکس بیشتر در آن نیست باید بروم و عکس جدید بیاندازم عکاسی همین پایین است آینهام را از کولهام بیرون میآورم و به ابروهایم دست میکشم پر شدهاند صورتم بیحال تر و زشتر از همیشه است و دو حاله سیاه درست مثل مال مامان زیر چشمهایم است چشمویم را ریز میکنم و به دو خط چروکی خیره میشوم که از گوشه چشم شروع میشوند و یکی از آنها بالا میرود و دیگری پایین میآید این بار هم می دهم همین عکسی را که دارم چاپ کنند پسرها دور میز ارسلان جمع شدند سر به سر هم میگذارند و معلوم نیست چه میگویند که یک هو صدای خندشان بلند میشود و در سالن میپیچد گلی روی میزش میکوبد آقایون خواهش میکنم صدای پسرها لحظه‌ای قطع می شود و باز دوباره بالا می رود. انگار حیات دانشگاه است. حامد هم بین آنهاست و درست مثل ارسلان بلند می‌خندد. حامد دوست قدیمی دانشگاهمان که ارسلان را دوست نداشت. هنوز یک ماه نشده بود که ارسلان به شرکت آمده بود. حامد با مهندس مقدم دعوایش شده بود. نامه استعفایش را داده بود به منشی مهندس وسایلش را جمع کرده بود و داشت می‌رفت. نامه را از منشی گرفته بودم و گفته بودم چیزی به مهندس نگوید. حامد را هم راضی کرده بودم به و داشتیم توی راه پله کنار باخیا حرف میزدیم. میگفتم اینقدر سخت نگیرد. شرایط کار همه جا مثل هم است. ارسلام با همان پوستخنده همیشگی که ابرو و گوشه چپل لبش را بالا میداد از پله ها پایین آمد. به حامد که رسید با کف دست آرام زد توی سیناش. فاصله رو رعایت کن حامد خان، خانم صاحب دارم. بعد چشمکی به هر دو مان زد و رفت خشک شدم حامد با توجب پرسید دوستیم با هم نه نمیدونم چرا اینطوری کرد ارسلان را درست نمیشناختم اما جور خوبی نگاهم میکرد که دوست داشتم بعضی روزها از کنار میزم رد میشد و کسی را مسخره میکرد و میخندیدیم بعد وسایل روی میزم را جابجا جا میکرد و سر آخر رومهئو را از روی کیس برمیداشت و توی صورتم پرت میکرد و میرفت بار اول جا خوردم اما بعد یاد گرفتم رومو را بگیرم و همراهش بخندم نمیدونم چرا اما دلم نخواست تامد از ارسلان بعدش بیاید گفتم کلا زیاد شوخی میکنه شوخی های خوبی نمیکنه بیشتر باش صدای خنده پسرها باز بالا میرود ساعت پنج و نیم است گلی وسایلش را برمیدارد زیر لب چیزی میگوید و با دلخوری بیرون میرود ارسلان از هیچ کس نمیترسد نه از گلی، نه از مهندس مقدم، نه از هیچ کس دیگر او رئیس پسرهاست. رئیس همه است میگویند دخترها پسرهای قوی را دوست دارند پسرهایی که از آنها حمایت کنند، پسرهای خوشتی پدرش تی کرد پسرهایی که دختربازی نمی کنند و چشمچران نیستند پسرهای آرام، پسرهایی که می شود برایشان نقش مادر را بازی کرد پسرهایی که شادند و شوخی می کنند، پسرهایی که دائم محبت می کنند، پسرهایی که اما من ارسلان را دوست ندارم، هرچه بیشتر نگاهش میکنم بیشتر میفهمم فهمم که دوستش ندارم، نمی دانم چرا، از یافش بدم نمیآید از چشم روشنش که مثل تیله است و موهای سیاه فرفریش که شبیه رمئوس و روجا میگوید دهاتی است، از پوست صاف و کمرنگ صورتش که همیشه خدا تحریش توناکی روی آن است، از قد بلند و تیپ سادهش از خنده همیشگی و پرخوریاش که مثل پرخوری روجا پر از زندگی است. حتی از اینکه لاغر است هم بدم نمیآید. اما چیزی در او هست که هرسم را در و نمیدانم چیست. نمیفهمم چرا مرا دوست دارد من که چاقم نمیتوانم خوب حرف بزنم شوخی کردم بلد نیستم تا حالا هیچکس کس را نخندانده و لباسهایم همیشه ساده و تیرند من که ضعیفم و از ترس اشکایی که بی وقت سراغم میآیند و از چشم ها تا زیر چانهم دو خط سیاه موازی می کشند. حتی نمیتوانم با خیال راحت ریمل بزنم نمیفهمم چی را در من دوست دارد و از همین می ترسم. از این نفهمیدن بیدر و پیکر که مرا پرت میکند توی فضای تاریکی که نمی شناسم میترسم یک روز ناگهان جایی که هستیم تاریک شود و چشمهای ارسلان قرمز شود و برق بزند سمهایش را نشان بدهد و همین طور که دارد میخندد دندان‌های نیشش را که بلند شدهاند فرو کند توی گردنم. چیزی دارد بین ما اتفاق میافتد که من دلیلش را نمیفهمم و می ترسم. همیشه فکر می کردم ارسلان باید از روجا خوشش بیاید نه از من روجا به ارسلان میآید، خوشگل است، قدش بلند است، برونزه می کند بدون خجالت ماتیک قرمز میزند و ابروهایش هیچ وقت به هم ریخته نمی شود روجا هیچ وقت گریه نمی کند و همیشه چشمایش آرایش کرده است میرود كارتینگ و از همه پسرها میبرد اما من رانندگی بلد نیستم و هرقطر هم بگویند باور نمیکنم که ماشین کارتینگ با ماشین عادی فرق داشته باشد آن روز هم باور نکردم صبح جمعه ساعت هشت ارسلان برنامه كارتینگ گذاشته بود گفته بود صبحانه را همانجا میخوریم و بعد شروع میکنیم هیچکس نفهمید چطور مهندس را راضی کرده بود بیاید و به نفر اول یک سکه جایزه بدهد به سرعت زیاد و پیچهای ترسناک و ماشین بیدر و پیکر کارتین که فکر کردم چیزی تای دلم زب شد و پایین ریخت ترسیدم وقتی برسم مجبورم کنند سوار شوم. بعد گاز بدهم و ترمز را پیدا نکنم و ماشین چپه شود و پای من بماند لای آهنها و قد شود و دیگر مامان حتی یک بچه سالم هم نداشته باشد بعد دیوانه شود و من تا آخر عمر با یک پا ازا بزنم و از دیوانه خانه به خانه بروم و برگردم گفتم رجا عصبانی شد درست مس پیرزنایی به لیلا زنگ زد به زور راضیش کرد و با هم رفتند می گفت سرعت و حیجان برای روحیش خوب است وقتی برگشت سکهاش را نشانم داد و گفت نگفتم اول میشم. ارسلان دنبالت می گشت وقتی دید نعمدی حالش گرفته شد بعد چشمایش بد جنس شدند و گفت پسر بدی نیست فقط دونم چرا اینقدر آشق رئیس بازیه بعد یه بار حالش رو بگیرم. و لیلا بعد از مدت‌ها خندید. حامد خداحافظی می کند. رجا روجا می‌گوید: صبر کن، منم تو یه جایی ببر ماشین ندارم. بلند می‌شود و وسایلش را جمع می‌کند. همه چیز را میچپاند توی بغلش و پوشه قرمز از دستش می‌افتد. بلند می‌شوم، کاغذها را جمع می‌کنم و دستش می‌دهم. باید بگویم دوباره برود با ارسلان حرف بزند زبان هم را میفهمند. آنبار آن بار که حرف زدند همه چیز بهتر شد میگویم میری؟ آره شاگرد دارم تو چرا نرفتی؟ بالای شال سبز تیرهش چین خورده صافش می کنم. چقدر به رنگ چشمایش میآید؟ چشمهایی که رنگش شبیه چشمای هیچ کس نیست ارسلان گفته امشب بریم بیرون خوبه که چرا عذا گرفتی؟ داری میری خوشگذرونی؟ سرم را میاندازم پایین و آرام میگویم وقتی تنهاییم خوش نمیگذره. برای بار دهم ده همان توضیح همیشگی را می دهد. ارسلان حق داره با تو خوش بگذرونه شبانه. اگه از بودن با اون لذت نمیبری تمومش کن. کیفش را روی دوش میاندازد. اگه از ارسلان خوشت نمیاد باید بهش بگی. اینقدر غیرطبیعی رفتار میکنی که اگه منم جای اون بودم فکر میکردم دوستم داری. آره راست میگویی را توری زیر لب میگویم که خودم هم سخت میشنوم. حالا واقعا دوستش نداری جوری میپرسد که لازم نیست بهش جواب بدهم با چشمهای بد جنس شدهش میخندد و با عجله بیرون میدود سالن خلوت شده و همهمه آرام بخشش شنیده نمیشود. شود میآید بالا و شروع میکند به جمع کردن لیوانها از روی میزها دلم به هم میپیچد و ارسلان سر جایش نیست که بپرسم کی می رویم و اصلا می رویم یا نه؟ نکند نرویم و بفهمت دوستش ندارم نکند برویم و آنجا دعوایمان شود و جلوی همه سرم داد بزند و من هلش بدهم پایین و تا آخر عمر بیفتم زندان و ماهان تنها بماند می نشینم پشت میز و به روزهایی که ماهان می آید ملاقاتم فکر می کنم باید به مامان بگویم نه خصه میخورد وقتی مرا پشت شیشه کابین ببیند تماس با لیلا برای کلاس ماهان یا را بر و شماره لیلا را می گیرم. در حال حاضر تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد خب شابانه بریم؟ انگار روی کمرم یک لیوان آب یخ خالی می, ار می کند ارسلان دستهایش را خشک می و کیسه ی لازانیا را وارسی می کند. این دیگه چیه؟ لازانیاه روجا ورده شانههایش را بالا می اندازد خوشش نیامده دارد جلوی خودش را می گیرد تا باز درباره اینکه چرا با اون نهار نخوردم و چرا لج کردم و چرا گفتم سیرم چیزی نگوید احمق می شوم و می گویم برای ماهان ورده حرص می از دست خودم که بیخودی دروغ می گویم تا ارسلام بیخودی ناراحت نشود به کیزا این زنی؟ لیلا بلند می شوم و وسایلم را جمع میکنم و میچپانم توی کوله صورتش پر از سوال است دلم میخواهد توضیح ندهم تا حرصش در بیاید دوست دارم لچ کنم و قوی و بد جنس باشم اما به جایش مثل دخترهای خوب میگویم گویم فردا عصر باید ماهانو ببرم کلاس نقاشی اما منشی مهندس گفت شرکت سروش جلسه دارم گفتم شاید لیلا بتونه اونو ببره چرا به من نگفتی؟ خدا میبرمش. خیره میشوم توی صورت ارسلان سعی میکنم بفهمم تعارف کرده یا راست گفته و اگر راست گفته میخواهد این کار را بکند چون بودن با یک آدم استثنایی برایش جالب است یا اینکه واقعا ماهان را دوست دارد چیزی از صورتش نمیفهمم می ماهان را اذیت کند، از او سؤال بپرسد و مسخرش کند، ببرد نشان دوستایش بدهد و همه با هم دورش کنند و به او بخندند، دستش را نگیرد تا ماشین به او بزند و از شرش راحت شود. نه ممنون، فکر کنم لیلا بتونه اونو ببره. چرا نه؟ ماهان که با من خوب بود، خودت گفتی اون بار که رفتیم بیرون همش کنار من نشسته بود. یادت نیست؟ یادم است، من لیلا و جاو و دو سه تا از دوستهای خودش را مهمان کرده بود فرحزاد به مناسبت شروع دوستی من اصرار کرده بود برادرم را هم بیاورم ماجرای بیماری ماهان را میدانست و همین اصابانیم هم کرده بود برادر من که برای مسخره بازی نیست عزیزم من که گفتم میخوام مسخره بازی کنم خب پس چرا اصرار میکنی بیارمش چون برادرته تو دوستش داری منم دلم می ببینمش برادر من با آدمای غریبه راحت نیست. آدمای غریبه رو نمیارم. هرکی رو تو بگی، هرکی رو که ماهان با اون راحته میبریم ارسلان دوستانش را نیاورد و من ماهان را بردم. ماهان ارسلان را دوست داشت. از چشمایش فهمیدم. از اینکه مثل آقاها روی تخت کنار ارسلان نشسته بود و سرش را بالا گرفته بود و خجالت نمیکشید به سوالهایش جواب بدهد. ارسلان برای ماهان یک ساعت مچی آبی خریده بود و یک کلاه فرانسوی شبیه کلاهی كه میساق در روزهای دانشگاه سرش میگذاشت و من آرزو کردم کاش خودش هم از آن کلاهها سرش میگذاشت و شبیه میساق میشد ماهان که خواست اس برود ارسلام بلند شد و گفت مردا با هم از دور نگاهشان کردم که دست در دست هم رفتند و وقتی برگشتند آستین پیراهن ماهان خیس شده بود و ترسیده بود. اما میخندید. حالا اما میترسم بگذارم ماهان با ارسلان آنقدر دور برود که نتوانم با نگاه دنبالشان کنم. میترسم حرف گوش نکند و کاری کند که بقیه دربارهش فکرهای بد کنند. ماهان بهترین برادر دنیاست. اما هیچ کس غیر از من این را نمیفهمد. نمی توانم بگذارم با ارسلان برود بزار از خودش بپرسم ببینم چی میگه از ماهان؟ معلومه؟ باید ببینم خودش دوست داره با کی بره کلاس؟ طوری با تعجب نگاه هم میکند که انگار ماهان شعور ندارد و نمی فهمد دلش چه میخواهد از نفهمی ارسلان هر حرس میخورم کوله هم را برمیدارم و همراهش بیرون میروم سرم را پایین میاندازم و جلو ارسلان با بیشترین سرعتی که میتوانم از پلهها پایین میروم تا کسی ما را نبیند آفتاب رفته و گرمایه هوا افتاده مینشینم توی ماشین ارسلان کمربند ایمنیاش را میبندد جمشیدییه دیگه چرا از من میپرسد وقتی تصمیمش را از قبل گرفته شیشه را میدهم پایین عسلان میپیچد توی رو آنقدر سرعت نمیگیرد که باد به صورتم بزند و چشمهایم را اشک بیاورد و لبهایم را خوش کند نگاهش میکنم که دنده عوض میکند و فکرش جای دیگری است کاش دوستش داشتم آن وقت بی مقدمه میگفتم ماشین را نگه دارد بعد محکم بغلش میکردم و همه حرفهای عاشقانه ای را که سال هاست بی خودی حفظ کرده برایش میگفتم اصلا همون اول که سوار ماشینش می شدم دستش را محکم توی دستم می گرفتم و رها می کردم تا مجبور شود با دست چپ دنده عوض کند مثل لیلا و می ساخت می شدیم مثل آن وقتا که من لحظه شماری می کردم تا با آنها بیرون بروم و وسط صندلی عقب ماشین لیلا بنشینم و به انگوشتهایشان نگاه کنم که روی دنده توی هم می پیچند وقتی می و کنار همراه میرفتیم نزدیکش می شددم و بازویم را به بازویش می و توی دلم یک مشت پرنده ی ریز بالا و پایین می پریدند. مثل لیلا که وقتی میساق حرف میزد نگاهش میکرد و سرش را به شانهش فشار میداد و میخندید و پرنده های ریز توی دلش از پشت چشمایش معلوم می شد. میدویدم جلوشان و عقب عقب راه میرفتم تا لیلا را ببینم که حلقه میساق را که تازه خریده بودند و به انگشتش گشاد بود، هزار بار در میآورد و باز سر جایش میگذاشت و فکر میکرد هیچکس نمی بیند. اگر ارسلان را دوست داشتم همیشه دامن بلند چیندار میپوشیدم و بلط بودم چه کار کنم تا همه نگاهمان کنند و با خودشان بگویند چقدر این دو نفر خوشبختند به ارسلان نگاه میکنم کنم که بی خیال به فرمان ما شناویزان شدند. به های خودم نگاه میکنم کنم که مثل شاگرت منتظر امتحان منظم منظمم ماموستره روی زانوهایم چیده شدند. میتوانم همین حالا دستش را بگیرم. نفسم توی سینه می ماند. دستم را از روی زانویم بلند می کند. ارسلان دستش را محکم میکوبد وسط فرمان و چند ثانیه نگه میدارد و فوشی که زیر لبهایش میدهد در صدای بوق گم می شود. آخه اینجا جای مسافر پیاده کردنه. کجا باید پیاده کنه وقتی چهار را اینجاست این بیچاره هم از این راه نون می خوره. دستش را طوری در هوا به سمت تکان می دهد که توی دلم برو بابا میشنود. رویش را آن طرف میکند و یک بار دیگر بغ میزند. بوخ میزند تا بگوید به حرفم گوش نمیدهد و اصلا برایش مهم نیست که من دارم چه مزخرفی میگویم. در خودم جمع میشوم و مینشینم گوشه صندلی. داد داده ارسلان مثل قاشق خاله زنگ میزند. احساس میکنم کوچک و کوچکتر میشوم و پاهایم از کف ماشین دور میشوند. عصبانی که میشود همان شبانه کوچک میشوم که مامان دعوایش کرده. مامان یا سمن در را کوبید بهم. مامان برگشت و صدای کشیده ای که به صورتم زد یک لحظه دنیا را نگه داشت همین مونده که این بچه نفهم دزدم بشه پس تو اونجا چی بودی؟ توی حیات با یاسمن بازی می کردیم را ریخته بودیم توی قابلمه من چندتا گل پرپر پر کرده بودیم و ریخته بودیم روی تیله ها و هم میزدیم، و خورش گل و تیله درست می کردیم ماها نذیت کرده بود و با خودم آورده بودمش بیرون. سر مامان درد می کرد و از تا به بچه نفهمش را نداشت. ماهان پسر من شده بود و یاسمن خالش. دور ما میچرخید و گل می آورد. برنج و غنده تمام شده بود. ماهان را گذاشتم بالای سر خورش که سر نرود و با یاسمن رفتیم خرید. وقتی برگشتیم تیله نبود. هزار بار از او پرسیدم. تیله ها را تو برداشتی؟ اما چیزی نگفت. اصلا چشمهایش نگاه نداشت. شانه‌هایش را گرفتم و تکانش دادم. تیله ها رو بده ماهان تو رو خدا تیله ها رو بده نداد اصلا تکان نخورد یاسا من قهر کرد گریه کرد و رفت خانهشان. بی صدا در را باز کردم و رفتیم توی اتاق آرام نشستیم و صدایمان در نیامد تا مامان بیدار نشود زنگ زدند مامان بلند شد دور سرش دستمال پیچیده بود، موهایش شولیده بود و زیر چشمهایش دو نیم دایره سیاه داشت. مامان یاسمم پشت در بود. گفت اگر نمیتوانیم موازه به ماهان باشیم که بچه های دیگر را ازید نکند، بهتر است او را ببریم آسایشگاه. مامان در را کوبید به هم. بیست اما هنوز وقتی کسی سرم داد میزند، آنقدر کوچک میشوم که میتوانم در خودم قایم شوم. ایم توی ترافیک ولی رو من خاریای کوچکی هستم با یک قاشق سنگین و بالگردنم. ببخشید بی خودی عصبانی شدم نمیدانم در صورت من چه دیده که مهربان شده معذرت که میخواهد ماهیچه هایم شل میشوند و چیزی از دلم می جوشد که چشم هایم را خیس می کند نور قرمز چراغ ماشین های جلوی شش 6شدللی هایی تار می زل میزنم بهصفختف ماشین چیزی از چشم نریزد من سعی میکنم کمتر عصبانی بشم شبانه اما نمیشه. به خدا اگه خودت پشت ماشین میشستی میفهمیدی رانندگی چقدر مزخرف و عصاب خورد کنه. کشه کمان اول را ول کرده و سنگ درشتی خورده به من. جنس باید رانندگی بلد نبودنم را مدام برویم بیا برد. بغض سفته توی گلویم را قورت میدهم و آرام میگویم. همین روزا یاد میگیرم. خودم یادت میدم. پس من به چه درد میخورم دستش را روی زانویم میگذارد و میخندد اما زود برش میدارد چون باید بپیچد توی جماران پخش ماشینش را روشن میکنم خواننده با ریتم تند رپ میخواند صدا را کم میکنم و هنوز نفهمیدم به چه زبانی میخواند که آن را خاموش میکند تو که این رو دوست نداری بیا خودمون حرف بزنیم از چی از همه چی از زندگی از هرچی که تو دوست داشته باشی از چه دوست دارم حرف بزنم؟ دوست دارم از همه چیزهایی که غلاب انداختن به مغزم و از همه طرف آن را میکشند حرف بزنم. دوست دارم بگویم شبیه میساق باش، الان خواهش میکنم شبیه میساق باش. درست مثل او با حسل و مهربان، من که نباید مدام کنارت نرد داشته باشم. بگویم یاد بگیر مثل میساق طوری به من نگاه کنی که بدون نگرانی همه چیزهایی را که در دلم هست نشانت بدهم. دوست دارم از ماهان بگویم که تکی از من است که در من زندگی نمی کند. بگویم زندگیش چه می شود وقتی مامان و بابا بمیرند و بلایی سر من بیاید. از لیلا بگویم که هنوز می گوید می کلید سل عمرش بوده و بدون او یک مشت نوت پراکنده است. پخش در هوا بی هیچ منطقی. از روجا بگویم که میخواهد مادرش را تنها بگذارد و عین خیالش نیست و من دوست دارم مادرش مادر من و ماهام بود و هر دو میرفتیم پیشش میماندیم تا هیچ کدام تنها نباشیم دوست دارم همه اینها را بگویم اما ارسلان حوصله شنیدنشان را ندارد رویش را برمیگرداند و میگوید دلت خوش است ها چه فرقی کند یا چه اهمیتی دارد یا چقدر بی‌خودی به همه چیز حساسی نه من چیزی میگویم نه او، و ولابوت او هم دارد مثل من توی دلش حرف میزند. ارسلان که ماشین را نگه میدارد پیاده میشوم. چند قدم میروم پایین و به تهران نگاه میکنم که زیر پایم پهن شده. غروب است و چراغهای شهر یکی یکی روشن میشوند. هر گوشه یک چراغ مثل یک ستاره. و یک ساعت بعد یک آسمان دیگر روی زمین ساخته می شود. چراغ اول را لابد پیرزنی روشن کرده که چشمایش خوب نمی‌بیند می‌خواهد شماره دخترش را بگیرد و بگوید یادش نمی‌آید قرص‌های صورتی برای شب بوده یا صبح اصلا شاید قرص‌ها بهانه باشد می‌خواهد توی سکوت سکوت‌کرکننده خانه صدای دخترش را بشنود چراغ دوم را پسر بچه ای روشن کرده که مادرش همین حالا رفته خرید و میخواهد خواهد جوجه را که یواشکی خریده از کمد بیرون بیاورد و یک مشت ارزنی را که از مغازه سرکوچه دزدیده جلوشان بریزد. چراغ سوم چراغ اتاق نگهبان شیفته شب یک بیمارستان است که تازه از خواب بیدار شده. با چشم های پف کرده چراغ را روشن کرده تا یک لغمه نانش را از توی یخچال خالی بردارد و همینطور که سق می زند را بپوشد و راه بیفتد تا دیر نرسد به آن بیمارستان آن سر دنیا این وسط هم خدا نیا مرزی به مادرش میگوید که آنقدر برای خستگاری کردن دختر امش دست دست کرد تا پسر مکانیک سر کوچه آمد و گرفتش و حالا او سر پیری بی سر و هم سرمانده. دستهایم را توی جیبم میگذارم و برمیگردم سمت ارسلان چیزی نمیگوید انگار اصلا قرار نبوده امشب حرف بزند قبل از اینکه درختها بالای سرمان را بپوشانند به آسمان نگاه میکنم روبرویم آبی است و پشته سرم سیاه پارک پر از دختر و پسرهایی است که خیابان سنگفرش که پارک را با عجله بالا می میروند انگار نه انگار پارک همین است که در آن استادند و بالا و پایینش با هم فرقی نمی کند. انگار سوار پله برقی شدند. جایی از راه می و سنگفرش آنها را بالا می برد. کافه وسط میدان برای یک غروب تابستانی زیادی خلوت است. میگویم بشینیم اینجا؟ نه بابا تا اون کافه بالایی باید بیای. نمیدونی چه قلیونایی داره. خستم با فلان نفسم میگیره نشینیم اونجا روی تختای کنار دریاچه مرقا بیار رو نگاه کنیم راه میفتد و از لای مردم رد میشود به روی خودش نمیآورد آورد که من چیزی گفتم بالا رفتن از پله ها برایش مهم نیست چون نفس خودش هیچ وقت نمیگیرد همینطور که مرا میکشد و رویش به جلو است انگار که با من نیست قر میزند خیلی تنبلی بس که ورزش نمی کنی از این به بعد بعد جمعه ها به کو هم لاغر میشی هم روحیت عوض میشه. باز بد اخلاق میشدم. هرچه هم روجا بگوید احمق، دارد بهت محبت میکند، فقط بلد نیست. باور نمیکنم. هیچ محبتی در جمعه هایش نیست. دلم میخواهد بگویم این 7 کیلو اضافه وزن و این شکم لعنتی را از همان روز اولی که آمدی و گفتی با هم باشیم داشتم. از این به بعد هم میخواهم داشته باشم. هیچ رپسی هم به هیچ کس ندارد. راه میرویم و حرف میزند. چیزهایی از خانوادهش میگوید. از خاله و مادر بزرگش و از پدربزرگش بزرگش که قهرمان مکعب روبیک هست دور کرده نمی چند ثانیه دارد پدربزرگم بزرگم چشمم میآید. آن روزها که جز چشمهایش هیچ جایش تکان نمی و مثل بچگی های ماهان تو شکش را خیس میکرد. حرفهایش توی گوشم دور میخورد و هم همه می شود. کلمات قبل از اینکه که از گوشم فرار می کنند. از بچگی فکر می کردم ماهان وقتهایی که به جای جواب دادن مات می ماند و خیره می شود به صورت آدم صداهای ما را اینطوری میشنود. می شنود. ارسلان حرف می زند و من لبهایش را می بینم که تکان می خورند. نگاهش می کنم. را و حرکت شاد دستهایش را موقع حرف زدن. نگاه هم که می کند می خندم. نباید بداند چیزی از حرفایش نفهمیدم. مکس می کند. خوبه وقتی می خندی؟ واقعی می شود و زهربان تند قلبم و نفسهایی را که تا ته ته دلم می و میآیند حس می کنم. به خاطر سربالاییست است فقط سربالایی. جرأتم زیاد شده که می برگردیم؟ مهربان شده که می باشه. هرچی تو بگی دفعه بعد تا کافه بالایی میریم بستنی بخوریم؟ بخوری دو دختر با کفش‌های پاشنه بلند جلوی بستنی فروشی ایستادند. مزه‌ها را امتحان میکنند و جیخ کشان میخندند اغب و به کمر باریک و موهای سشوار کشیدشان نگاه میکنم که پر و خوش رنگ دور گردنشان پیچیده دست میکشم به موهای نازک و کمپشت و بیحالتم که چاره‌ای جز بستنشان پشت سر ندارم. هر دو مثل روجا موزه های بلند ریمل زده دارند و معلوم است که هیچ وقت نگران اشکایشان نیستند. ارسلان دو بستنی سفارش می دهد و میگذارد اسکوپ های او را هم من انتخاب کنم. میگویم شاه و طالبی بردارد. شادی رنگشان بهش میآید. برای خودم هم ماست و سیب ترش میگیرم. کمتر از بقیه چاق میکنند. بستنی های من را میگیریم و پایین میرویم. پیرمرد و پیر با کفشای ورزشی سفید از جلوی جلویمان رد می دستهایشان را مشت کردند و با آهنگ قدمها عقب و جلو میبرند. روی لبه سنگی باغچه چه دو پسر نشستند که سیگار میکشند و چشم دور کمر باری که دخترها میچرخد. دختری دست به سینه جلوی پسری راه میرود پسر شانه هایش را میگیرد و هلش میدهد و با هم میخندند. از در پارک بیرون میآیم. به آسمان نگاه میکنم که پر از ستاره است. میگویم جبار رو دیدی؟ همین سه ای که توی یه خطن. از کجا ولدی؟ تازه. اون ملاقه هم دو بکبره که توی آسمون کسیف تهران فقط چند تا از ستارهاشو میشه دید. با انگشتم ستاره ها رو در آسمان به هم وصل میکنم. مواظب باش. مراقب است به تخت سنگ بزرگ وسط راه نخورم. میرسیم به ماشین. راه برگشت چقدر کوتاه بود به خاطر سرپایی نیست میدانم. فقط سرپایی می سوار می شویم را دستم میدهد و راه میافتد به موبایلم نگاه میکنم لیلا زنگ زده و نشنیدم ارسلان از داشبورد یک سیدی برمیدارد و موسیقی آرامی میگذارد. شیشه را پایین میکشم پنج انگشتم را در باد باز میکنم و میگذارم باد دستم را با خودش ببرد ارسلان از کارش میگوید و برنامهش برای آینده برنامهی که من هم در آن هستم چشمایم را میبندم انگار از مسابقه بوکس برگشتم کتک خورده اما آرام و برنده انقدر آرامم که میتوانم سه روز بخوابم امروز هم تمام شد باید یادم بماند مدارکم را برای بیمه بردارم باید وقتی رسیدم خانه به لیلا زنگ بزنم راهی تا خانه نمانده کاش ماها نخوابیده باشد